اللهم فرناجمیال مشتبین در مباحث آموخس از بحث من سابقا نهاز کردم اینا بحث های دیگری هم داره بخیر در کتاب های متعارف ما بیشتر همین بحث خطابات شفاهی قرآن مده شد پس این با عنوان ترخ محل نزار و ترخ مسئله باشنایی بخش مسئله اتضاعن طبق قاعده و ربش خودمون اتضاعن مکرده محل محل مستاد انداز الله نفسه که دینش در وارد تحقیق و شما محله این بخش ما بخش طرحه فعلا بر اساس با عنوان مثلا نقادی نادرجاتی چون که مطرح نمیکنیم بیشتر و نقدها را هم به صورت در واقع طرح میاریم احساس کرد که مردم و بحث بحثو در سه بحث قرار دادن یک بخش بحث ایشون راجبه تصویر نهند نظریه که در اینجا کلماتی و فکلای و از کردن که سه جور میشه تصویر کرد این که آیا تکلیفی که از خطاب استفاده میشه آیا یعقل تعلق رو به مهدومین املا یکی ام این که امکان خطاب با مهدومین هست یا یعنی نه این دو برد که به تحریز ایشون برد عقلی میشه برد سوم که عدوات خطاب در این اصلاف بیدن جمع آیا این حدوات خطاب بعد وزم شده برای اینکه شامل مهدونی بشه یا خاص به مخاطبین این تعبیری که مرمون استاد برده و بحث اول عقلیه بحث دو سرون به اصطلاح لفظیه بعد ایشان رو بیان کردن و کن بودر چیه کتر را گرفتم نتیجه که بس راجع به قسمت رومه در لفیز و این توضیح ها کلامه ایشان وقت بودشه در صفحه دیویست و که من صفحه دیویست رو به این که ما داریم هفتادش بخش اول کلامه ایشانه راجع به فرق نظام از دریفت در حفظه شیفت خود مسئله میشن که میگن محل نزا راجع به بخص لحظی است وقت در بحث لحظی هم اشون اینجور فرض میکنن که عدوات خطاب یعنی تحریب نزا رو به این صورت که آیا عدوات خطاب مثل عقیم و سلام وضع شده برای خطاب حقیقی یا خطاب انشایی تحریبی که اشون دارن مذاهر بین بی ارجاع دادن که آیا بحث شده برای خطاب حقیقی یا خطاب انشاء است البته این شتاب خطاب حقیقی به انشاء بیاد یعنی مراد جدی ایشان چی ظاهرا مراد ایشان خطاب حقیقی جایی که مخاطب معینی و هدف ایجاد لحظ و اندعا در این مخاطب ظاهرا مراد ایشان از خطاب حقیقی این بود و اما نسایت به خطاب اینشایی نه این انشایت شده به عنوان حکمت کلی که شامل این شخص موجود و هر کسی رو که دارای این صفحه بگیه ظاهرم مراد ایشان این حالا تحبیر ایشان به خطاب حقیقی و خطاب اینشایی شما است از اینجا گفته بشه این حکیری حقیق به حقیقی یعنی به یک قانون شخصی داریم، اعتبار شخصی داریم، اعتبار نوعی و اجتماعی داریم، قانونی داره. حالا این تعذیری در خطاب حریبی و خطاب انشاءی برمی‌دارند. بنابراین ایشون رو اینجور تعذیر می‌کنن که آیا ادوات خطاب وضع شدن برای خطاب حریبی یا خطاب انشاءی؟ یعنی شما گفتیم برای خطاب حریبی لازم میاد برای خصوص حاضرین در مسجد تعذیر حتی اگه کسانی در مدینه بودن قاهه بودن شاملشون نشین بلکه لازم میاد در محصد هم کسانی مشروعی این خطاب بشن که منتفضن حواسشون هم اگه پافه نوش اونا رو هم شامل نمیشون پس ایشان از اون خطاب حقیقی با این خصوصیات هم حاضر باشن موجود باشن حاضر باشن منتفض باشن این میشه خطاب حقیقی اما خطاب انشایی نه هر کسی که فرض بشه بعد ایشان می کنم بینید که ظاهرش هم همینه که خطاب خطاب است و به این صورت خطاب انشایی به تصویر ایشان حدس الله سره من اجمال داره کنم آنشان تصویرم که معدوم رو به منزله موجود فرض بکنم یعنی محیار در خطاب انشایی این می که معدوم رو به منزله موجود فرض و تقریه بکنم بعد همان در دقیقه قضیه برای اینکه نمیشه بگیم ادوات حساب و کتابه بلکه این یه ای سیستمال کار داره نمیشه بگیم ادوات استعمال این ادوات مستعمل است در کتاب حیدری تبدیل استعمال بله چون اگر مستعمل باشه باید بگیم حتی موجودی در زمان فعلا نمیگیره فقط حالیم در مشه نمیگیره بعد همان این ما قضیه اختلاکش نه قطعا که درست نیست چه این مخلبی نیست این فقط خطوص و حاضرین در مجلس رو به پیشنا میبشه لطایشون آخر عمر بله ایشون فهم الله مناس مند التضام به استعمال ها به استعمال علوات خطاب در خطاب انشایی ولو کانداله که به اینای مرادشون از اینایت یعنی فرض و معدومین رو رو مندله موجودی فرض بعد پیشون می فهمن رو اگر ما قبول بکنیم که خطابات قرآنی خطابه از طرف خداست و که به لسان رسول الله به امت یعنی که انما خدا داره به امت یایو الذین آمن محمد هست حقیم اما اگر گفتیم که این خطابات قرآنی نظر از علاقه بیه. قبل قرار قبل از اینکه خونده بشه قبل دراریه یعنی ان رسول الله قرائته و قرائت قبل دراریه فلا موضوع ندیدن خداوند موجود اما اگر بگیم اینا بر نو برگرد پیغام نازل شده قبل اینکه پیغام رو بخونه دیگه چه بحث نداره چون خب در قلب پیغام رو ای یا الذين یا در قلب پیغام رو ای یا الذين امنوا در قلب اگه اما دي خطاب نیست که بگیم به تعبیر ایشان چطور تعیید کتاب خطاب این هم ایشان به اصطلاح اضافه کنم بعد ایشان در اینجا نصف به آراع مسئله متعرض و رحی مرمون نایمی شده فرموزن به این جل این مرادشون و حاضر بیان این مرادشون و حاضر بیان این وقت اخیر نیست که یه خطابات به قلب رسول الله به زبان رسول الله خطابند نه نه اصل مطلبی که ما مفه کرد من نایم فرموزن که این خطاب مسئله را ارجاع دن به این که خطابات و قرآنی از قبیل قضای یا از قبیل قضای خارجیه می اگر اگه اگر در دینه آمن و امر مصلا اگر قبیل از خارجی باشه مردمین شامل نمیشه قضا الهییه باشه شامل میشه این کلام مرحوم لاهینی که من اجمال گفتم و اول تو بحثم بعد مرحوم استاد اشاره کردن لا یک ان کن از قضای حبیهیت حبیهیت اگر نیازمندی به نفس موجود بله اگر چه در قضی حقیقی فرض موضوع است؟ الا اند مجرد داره بله در شمول خطاب این کافی نیست مجرد هایی بودن ضرورت اند صرف وجود موضوع خارجم به مجددی این که موضوع در خارج باشی یا نباشی این کافی نیست در توجیه خطاب بله بزد بیسی من هر وجودی مهم این است که باید فرض بکنه وجودش رو این آیوهالالین آمنون فرض کرده وجودش رو در مجلس. تخاطر. مهم نیست که این قضیه به اصطلاح حقیقی باشه کافی نیست این مردار کافی نیست این هم مناقشه ایشان با مرموم نایمی هستانا ولی ایشون در مطلب تا اینجا دو تا رعی رو متعرض شدن یکی رعی نایمی او این که حقیقی باشه شامل محضوعی میشه خارجی باشه نمیشه یکی هم رعی موارد خودشون کتاب حقیقی باشه یا اینشایی باشه تن خطا واقعی باشه شامل موجودین میشه حاضر میشه خطا انشائی باشه شامل معدومین نمیشه میشه البته با عنایت به تعریفشون با فرض معدوم به منزله حاضر این خلاصه طرح در مسئله این بخش دومه کلاس مربوط استاد من خیلی منجذب بهشم مطرح کردم که انشاءالله اینم بعد از بخش سومشون ثمره این بحثه دو تا سمره ذکر شده یکی این که قول به عموم خطاب للقاربین ولی معدومین فرواهرهو تکونه حجت هست علیهن زواهر کتاب برای قاربین هم حجت بعد ایشان بله ایشون فرمودن که این سمره درست نیست اشکالی از کفایه نهار کردن که این دو تا مقدمه باید ثابت روشه یکی این که بگیم زواهر برای کسی که قصده افهام و حجت نیست درست معروف که به مرموم محقق قومی به احسان داده شده که زواهر کلام به من قصد افهام و حجت نم یکی این که مقدره دوه به افهام هم خصوص قا... حاضرین باشد. و من از ایشون که این مطلب درست نیست قدمش دو مقدرهش باقیده اولا زواهر کتاب برای همه حجت زواهر کلام بردن زواهر کلام برای همه حجت من قصد افهام و من لنی افهام سایه زرواره کتاب هم خصوصا حاضری نیست شما را نمیشه. پس این سفر بار نمیشه به تنبیل ایشان این سفر بار نمیشه. سفر دوم فردا سایه تو هم آن نخواهد بود نخواهد بود آنها با قابلیت عموم و شمول به عمومات کتاب و سوند در اجازت ال قاضی قاعد... قابلین و معدونی سفر دوم سلام نداریدم این که هیچ از قایوس خودی عموم کتاب شامل غایبین میشه تحصیل به اومش میکنیم مثلا بحث معروف یا ایوه الذین آمنو ادانو دیده صراف من یوم جمعه این بحث معروف هست که آگه این شتاق شامل ما هم در زمان غیبت میشه یا نه به کسانی تو زمان حضور رسول الله بگه یا اینا گفتن ثمره اون نزا اینجاست اگر شتاق شامل غایبین بشه ما رو میگیره نماز جمعه بر ما هم باجه اگر کتاب شامل غایبی نشه مختصر زمان رسول الله رو حضور میشه دیگه عموم نداره تمسکی با عموم نمون این سمره ایست که برای مسئله به تبدیل ایشان کرد. در در چند سفره البته حالا شما قاسم مراجعه بکنن در محاضرات روستار در سفری بردی سفری دیگه سه اشتاد باشه اشتاد صاحب کفایی رو نروم کنه که این سمره بار نمیشه اشتادتی اولاً قبول می‌کنه که این ثمره خوبه بعد اشکال صاحبخوایه رو یک طرف بعد صفحه لیلیسر شد که چون خیلی منفاوته که شما این خطا ایشون اشکال می‌کنن یعنی اشکال صاحبخوایه رو نمی‌پن که گفته این ثمره بار نمیشه عبارت سال وسائل اووردن جواب که خایو از صفحه لیلیسر شد و ملخص ما حفظه از اینجا شروع کردن مناغشه کردن با صاحب کفایی که این اشکار کفایی وارد نیست بعد فرمودن در صفحه 182 فرمتیجه انبول لا بحث به حاضر سمره این سمره ایشون قبول درند و خلاصش اینه که اگر یک کتاب قرآنی بود اگر گفتیم کتاب هست خصوصا حاضرین هستن چون احتمال داره که در این خطابات یک خصوصیتی لحاظ شده باشه اون خصوص حضور دیگه تمثل که اون همین احتمال کافید که از عموم بدست اما از این خطابات به تحلیل ایشان خطاب انشاءی شامل باربین هم میشه شامل مردمی که اشبال نارو تمثلت میکنه این هم نظر اونوارا که خب طبعا ایشون چون کتابات رو خاص به حاضرین نمیدونن تنفس به عموم کتاب میکنن این دو سمره ای که ایشون نقل فرمودند یکی از دواره اصافر عموم تحجیب سمره اول آیا جواهر برای قاغبین حجت است یعنی این سمره سناریو سمره دوم قاغبین به عموم همش ممكنه خب عموم همون زواله دیگه <تصفيق> این حیاجوا برای ما واقعا پرجواهر معلوم استاد ولی جلاله مقامشه در... این همونه حالیه یعنی این سمره دوم اول یکی در سمره اول گفتن جواهر در سمره دوم یکی از جواهر که اساس ما بود با اساس ما حجت به جواهر چیز... شما خودمون نظر به صورت چیز خاصی که نیست اگر شما ثمره اول قبول نکردی خب این سمره بار نمیشه دیگه مگه اینجور بگر بقیه زواهر اشکال نداره اما نصحی به اساس خصوص این ظاهر مگه مرادی شده ما تنجم میکنم از مقام ایشان شعن ایشان اجل زواهری ما میگیم حجتی میگیشم اساسل اساس یکیشم اساسل اصلاح و زواهر که عنوان خاصی نداره، یکی هم اساسل حیثت وقتی این زواهر و ح معنی ذواهر کتاب حجت یعنی چی زواهرش یعنی است این ذواهر حجت این اذهان که آیا کتاب حجت هستند الان نه این بار کتاب حجت ما بیش از تو دو اون دو رو و یا نه او رو کسی که ذواهر کتاب حجت این تناسب و اساطیر عمومی چون کتابات شفاهیه بسیار دیاریالدی نامن و عقیم و سلام این که میگه زواهر حجت یعنی به اساس اساطرمون ترسط بکنیم یا به اساطرمون ترسط <تصفح> مورد از زواهر حجت اساس اساطرمون خیلی من احتمال میدن به اساطرمون بحثایت مقدار اینقدر لحظی شده که شاید تراجع دقیقی به محتوى نشه. این برای من هنوز روشنی حالا ما هسته این سرول تره مسئله رو ا چه در تحلیل محل رضا یعنی در ای که فرخواندن بعد تحلیلی که فرخواندن بعد ثمره ای رو که بیان فرخواندن مقصودی رو ما الان اینجا آخرش می‌خوام خیلی خدمت استادونه رو همین که عرض کردم بعنوان طرح ما الان مطرح می‌کنه. اولی که ایشون اول دو طرح مسئله عقلی و نفسی. من تصور عقلی مرادی از عقلی کردیم. بحث و حبود از کنش مرادشون باشه نه عقلی و به هر حال این دو بحث که آیا تحلیف به قاعد میشه یا نمیشه به معدوم میشه یا نمیشه توجیه شتاب بلی مخاطبه با معدوم میشه یا نمیشه اینا بحث های عقلی نیستن بحث های قانونی هست اصطلاحا اینه عرف آم نه قانونیست به تو عرف آم من میار عرف در عرف عام من میار اما بس وقتی صحبت از تکلیفه آرازان موارد تکلیف، موارد جرم، موارد اعتبار قانونی علاوه قانون. بر اینها موارد قانونیه نه موارد عقلی نه موردشون از عقلی همین باشه عقل عملی که راجع به جامعه بشه که راجع به نظام اجتماعی بشه در این بخش هم مراق قانون باشه و الا اینها عقلی نیستن الا تحویر این حالا این نزار تکلیف روشن بشه بحث اوهلایی داره نه بحث عقلی بحثشون بحث است که از کدید در جهاز اوهلایی بلید کسانوها قابل به که نمیخواب که دن این بحث این یک مطلب که ایشان اول قرار بعد بحث بحث بحث است یک توضیحی هم دادن دو سطح این مطلب توضیح دادن که اجمادش رو سابر به قبل فرمون یک بحثیست چونتون من من آیان مطرح نکرده این برای بحث های قانونی و حقوقی برای شما کاملا مفیده این کاملا باید ترجمه بشه ببین من یه مثال میذارم ایراد مانع نتی برمی‌آوه یه مانع بحث اون بحث مقدمه یه طرح بحث مقدمه به همین طرحی سید. و اصول آمده که غالبا بحث مقدمه رو تو لحظی لفظی آورده تو معالم باید واضح بشه بعد از عوام بحث مقدمه رو این یک ترهیم مسئله است یه هم الان اصولی ما که این بحث بحث عقلی بحث به این تلازم به بحث عقلی تلازم بین وجود بشه بین وجود مقدم حالا ما به این کلمه عقلی گفتیم اغلایی به جایی کلمه عقلی گفتیم قانونی سوالی که اینجا میاد اینه آیا یکی مسئله رو می شما از دو زاویه مطلق بکنیم مثلا دو زاریه بحث و هر کدوم به اصطلاح اون منحجه خودش و روش خودش رو میخوایم یک مثلا مقدمه باشه ما یک بحثی توی اعتبار اعتبار قانونی بکن کار به لفظم نداریم اصلا آیتون مقام اعتبار اگر یه چیزی جل شده اعتبار شد آیا معناش اینه که مقدماتش هم اعتبار شده همون اعتبار شامل مقدمات کار به لفت ندارشون بحث لفت مفهن نیست بحث جلالت و احسان جلالت زواهر لفتی هیچ چینا مفهن نیست ما بیاییم بحث رو رویم رو رو توی اعتبارات قانونی اصلا در ویاه اعتبارات قانونی در این مسئله حقوقی رفت نداره اصلا بیه لفت نداره آیا اصلا اولا تلازم ما بین اعتبارات معبوله اعتبارات هم مثل فرصیم آتش و دوده که اگر دوده که آتش دوده خودش مص... مختصیه دوده یا مختصیه حرارت اعتبارات هم از این قدیلن اصول و اصولا تصویر میشه تو به آه اعتبار تلازون بین دو چیز یک تصویر شدن و اگر تصویر بشه آیا بین وجوبی چیز. یک وجوبی که اعتبار میکنه با مقدمه او هیچین چیزی هست این یک تصویر مثلا تره دروم مسئله تره لحظی قصد سه آیان و اصولی ها به همین ظواهر دلالت و مجاز و حقیقت و اینها تماس کرده مثلا اگر گوش بخرد این تعدیر گوش بخرد توش خوابیده برو بازا به بحث لحظی قصد هم نگه تو معالم آماده که دلالت به مطابقه یا تزمان یا افران بحث پس یه بحث لحظی داریم یک بحث قانونی داریم, داریم. سوال اینه آیا تو این مسائل ما دو تا بحث داریم اصلا این مسائل خودش تندیل بشه این را زردش در درست اصلا این بودی ها مشکر تو چه تو بکنیم اصولا ما تو این خودمون دو بحث داریم یکی بحث قانونی یکی بحث لفظی اینجا آنسوی فهمان عقلی و لفظی تفکیه کش موشنفه. ما اصولا منحج بحث همیشه. شما در منحج اون نقطه احساسیتونه همیشه باید این باشه که منحج بر روش بحث و کاملا از چیز آیا این روش رو ما در بحث مثلا بحث اصولی اینو قبول بکنیم ببینیم آیا ما این روش رو قبول بکنیم که بیانیم یک مرتبه این بحث رو در خود قانون و خیلی نفسه بررسیب کنیم یک بحث دیگه مرتبه دیگرم تو مقام قلالت و جهات زبور لفظی بررسی کنیم مثلا بحث اجتماعانو نهگرم همینطور اینطور فرمان میکنن مثلا بگیم اگر دو توحقی بودن اینا در مقام امتصال به هم رسیدن این بار مثال تو مقام خارج همین در مقام انامتاب به هم رسیدن با تو خود دعا اعتبارونی کا تع. در خود اعتبار قانونی که رسید در اون مقام اعتبار قانونی اینها باید تعریف پیداکن طبیعت اعتباره قانونیکن باید تریف پیداکن. اگر توی اعتبار به هم رسیدن این یک بحث قانونی یه بحث لحظی عدم صلات داریم بالا تقثر داریم لا تلبسل حریق داریم. آیا این عقم صلات بالا لا تل بسر حریب لا تل بسر حریب میشون عقم صلات تلیف بزنه؟ چرا این حریب لوبست اونجا صلات است و اقامه و هم رستید؟ چرا تلیف بزنه؟ چون در اینجای آدم لباس مجد. لباس حریب میشه نماز میخونه؟ پس یه دفع لفت بس لطیه روشن شد؟ یه دفع بس خامنیه اینجا بین آرخیت همینه یه دفع بس عقریه یه دفع لفت بس لطیه اصلا سوال از دیگر در بحث بایشان با بشه آیا تو مطاقل اصولی که ما در ظهورات داریم ما صحیحش کدوم یکیه دو تا مسئله قرار دیم مثلا بنده بیجنه آدم این بود که یک بحث در اصول به جیب اعتقال در قانونی هستن بشه یک فصل اصول یک فصل حجیات زواهه مسئله زواهه رو حجیات اونها هشتی ما بیم مسئله اجتماع نه تو هر دو مسئله ذکر کنیم. مثلا ما تو مباحث اعتبارات قانونی پیلی بحث بکنیم که آیا اطلاق و به مقام انتصال تقییب ما کار به لفظ نداریم این بحث روی ها اعتبارات قانونی یه بحث هم دیرنی تو مباحث لفظی مطرح کنیم. هستی یک بحث واحد رو یک دفعه از زاویه قانونی بحث کنیم. همون بحث رو بار دیگر از زاویه لفظی بحث بکنیم کنیم. بر شد لفشی آیا ما دو تا بحث تر میکنیم چی شده آران اصول قدیم یک بحث مطرح کردن دو تا مطرح نگرد بره مثلا مقدم واضی رو از راه لحظی مطرح کرده؟ آیا بی شده تو نمیرسه این مطلب رو؟ آیا تصاحل شده اینکه که نگه بشه برنه که خوش فکر به این چه چرطی شده یاران اشتغالات زیاد داره خیالم که راننده سوال باشه نه اینکه فکر کنه این یه چیز بحث لطیفیه رو شرح نشده آیا ما اصولا دو تا بحث داریم یک بحث قامی داریم و یک بحث لحظی مثلا الان اساتید متأخر ما مثل استاد دیگران گفتن از اینجا اینو بحث تلازم ما کاری به لحظ نداره اصولین قدیم بحث به سر لحظ بردن که آیا دلالت برایش میکنه نمی کنه بگیم یه شکل ثبوت درست بکنیم نه قدیم نه جدید بگیم این مقدمه واجب دو حیثیت بحث داره اجتماعان نه دو حیثیت بحث داره یه حیثیت قانونی داره که به لحظ کاری نداره یه حیثیت لحظی هم داره از حیثیت قانونی از کار من ما رو توضیح ن سآل برسنی تو دارستون. سآل اینه که ما منحجمون بردشمون در بحث و چجوری جوری بشه؟ دو تا بحث تو دازانه دا بیاریم. مثلا این بحث شفابات شفاهی رو الان نگاه بود تفتیق دیگهش در اینجا. ایشون مفهمدن ما ممکنه شفابات شفاهی بحث خانونی, بحث خانونی به تصلاح بردیه. ایشون عقلی بکنیم. آیا تکلیف ممکنه از متوجه به قایبین بشه. این کار به نداره که خو این لذت ابي مصلاط متوجه رقایب از عبدونی این کاری بو اون بحث ایشون دو بحث جداگانه گرفتن ایشون در اینجا این کاری کرده در جایی یعنی این خود کبرای مسئله اونجایی که من میگم خب من همه کتب اصول معاصر رو نگیدم تا اونجایی که من دیدم کبرای مسئله تنقیح نشده اون کبرای اینه اصل کبرای اینه در این سنخ بحث ها ما دو بحث داریم یا یک بحث داریم تا همین یکی یا دو تا ها این چرا الان من برای چند تا مثال بدم مثلا ما اگر بودیم در اصول یک حصل اصول رو بحث در قانون و اقوارات قانون و خصائط بگیم اجتماع نه اینجا هم اینجا بیاریم به لحاظ خداقایم یه بحثم تو اصول بذاریم زواهیم اونجا هم بیاریم چون اونجا ما هایی میگیم عقل صلاح بالا تردسل حدیث تقییب نیکنی آنه این رو مستاقیب همه مستاقیب نیست دو بحثه اون یک زمین بحثه یک زاویه بحثه لذا ممکن است خیلی در این بحثه ای که الان قسمش ملازمات عقلیه بذاشتیم اینا در از در از در این ممکن است در دو داویه بحث بشه هم بحث بشه به داویه اعتبار قانونی که کاری به لحظ نراشته بشی هم به لحظه وضعی بشه لحظی بشه جهات لحظی رو ما بایدون لحظ بشیم این سوال آیا اینکه که مثلا پرسیم خودم های از حال ما خودم های حسولین سونی و شیده فرم تا زمان های متحشد. بحث مقدمه این رو توی مواسط الفاظ رو بودن. و بعدی ها جدیگه های ما از طرنس مرمومای های شانس سوانی قضا سالله اصلا مثلا بوده این مواسط زباده به الفاظ این ملازمات, ملازمات خارج کرده که پیش مقدمه واشه میشه اشتماع هم ندید بحث ملازمات آه. رو کلا خارج شد از بحث زباده. و دواره به اماراتشان این از سه بحث ملازمان یه بحث دیگری هستند؟ این اونه مطلب باشد آیا واقعا بی ای توجهی شده از خودمان و آیا خود این مطلب خودش که اصل ریشه دیگری داره که ما برای حل این مشکل باید اون ریشه دیگر رو حل بکنیم. اونی که من به ذهنم میاد البته وقت مثل آرگوی واضح تجربه تحجیبه دیگر این راه رفتن من فکر میکنم اگر بخوایم ریشه رو تحریل بکنیم غیر از جاد قانونی ریشه شکم از را برمیگرده که ما در انشاء نقش لفظ رو تا شهر هم بدونیم ما در اخبار نقش لفظ و دراس لفظی در حقیقت در حد اخبار از واقع گاهیم مخابله میاد دایا نمیاد کاری به واقع نمیاد اما در این چطور؟ چه در این شاه لفظ همونطور روزه اتباهه یا در این شاه لفظ تأثیر اساسی داره یعنی به عبارت نورتا اصلا قانونیت قانون اون مقدار ابرازه اون مقدار تلفظه. شما این اعتبار قانونی رو جدای از دلالت لحظی بررسی بکنیم. چون لحظ در باب اون تأثیر اساسی رو داره. مادام ابراز نباشه اصلا وجود قانونی بگانیم کنه. و مادام در افق نفس باشه و مقام ابراز. اصلا بیه هیچ وقت قانونی اعتبار نیست. قیوان امر اعتباری به ابرازی. چون قیمانش به اون واقع قانونی چند به نقدار محدود میشه نوت به من چند دفعه هر کردم لسته که نه نه نه نه کاری بگم که خانون رو باید دو برمشون اگر آمی تفسیر تفسیرش بر اساس هر از دست خارج بشن بگی... خب نه بگی نه ممکنه از یک ذرافات لحظی باشه روی با اعلان من... بگی شورای نگهبان بگی نه مراد جدی این بود اما لفظ چیز دیگر رو اون کارم اعتراف بکنه عقلی نمیشه خوب دقت بکنه من شرارهن عرض کردم در موازی ادراکات بی اعتباری به تاری مجموعه ایشان در اصول فلسفی بحث اضافه کردن اصلا خب بحث خوبی نداشت جواز خوبی داره، اما خود خب شون ایشون دیگه فلسفی داشتن در طرح آنسان جمعی اجاز و اصولی که در کار ما مخواه متعرض باشه یکی از موقعاتی که باید به ادراکات اعتباری که مرموم علامه در اصول فلسف و فلسفه که این مطلب کردن از کردن اضافه باشه به امره اعتباری فقط قوامش به لحظ نیست حضورتش هم به لحظه این در یکی از تصالت امر اعتباری اما در اینطور نیست تا اینکه شروع شد همه علما اومدن این ثواب واقع شد ممکنه 5% نره ولی حداقل 5% دروغه अरे اصلا 20 تا عالم بودن 15 تا نمونه این اینطور نیست. اما تا گفت همه علما راه اقرار کردن این میگه واقعه به این ثواب این ثواب اوناکس مقام انتباره انشاه همون مقداری که لعز دلالت میکنه و همون مقداری ابراز قانون ثابته خوب بفهمید مرمو اصطاد این بحثو رو محضت نکردن بسید چون اصولی و بزرگواری هستن او ارتکازات خودشون متفقه چون استاد ابرازو یعنی ابرازو در این مثل ابراز در اخبار میدونن اون ابرازو برای ایک عمر ارتباطی این ابراز برای اعتبار در افق نقص نفس نفسانی است ببینید لذا ایشان بیاد اول تصور اون اعتبار نفسانی رو می بعد مقدار ابراز احساب می کنن. ابراز طبق تصورم و این دو سال تسکیت نمیشه یعنی به ابراز دیگر بر در وجود قانونی مثلا تلازم ببینم با مثال تلازم ببینم ما بین وجود مقدم وجود بشه این کافی نیست دیدن او این باید بیا سا تو ابراز روشن بشه تا به ابراز نیاد قانونیت نداره این طور نیست که مثلا خودم ها ملتفض نشدن چرا یک از مباحث رو مثلا این بحث رو چرا از داری اقلانی مطرح نکردن از داری لفظی مطرح کردن چون اینها معتقد بودن که خطاب مراد اون لفظ نیست مراد از خطاب تکلیفه مثلا مروم آرکوی فرمین آیا خطاب حقیقی یا خطاب انشایی در اصطلاح اونها خطاب همون تکلیفه مشور می نمایند که ما قراره که آیا تکلیف معذورین رو شامل می‌شاید میشه این بحث معنالیست بحث عقلیه تکلیف اما بیایم بحث بکنیم خطاب حریضیه یا انشایی خطاب اصاسی اون تکیفه ده تا نکشه اساسی فرمودید اون نکته اساسی تفکیک بین این دو تا درست بیان شد تفکیک چرا چون بر اگر شما در افق نفس تکلیف رو میخواییم فرز میخواییم برای موجودی نه برای اون رو افق نفس شما هیچه ارزش قانونی نداره ارزش قانونی تو مقام ابرازه مثلا ارزش قانونی و مقام موجودن این با ابرازه اگر تو ابراز آمده این گفتیم کتاب کتاب به این شاید. خواهی نخالی تو اعتبار هم تکلیف به باید کنه خواهیم؟ اگر شما آمدیم گفتیم تکلیف به هایبین خود نفرده مثلا تو کتاب هشم باید تو توجیبیم کتاب حقیقیه کتاب قاطع اینشایی می سوزدردونیشون اون کتاب دیگه کتاب اینشایی می کنیم پس بنابراین این بحث دقیق من الان همه توانیم ترمیم کنم ببینیم ما نباید بحث به تحبیزشون عبدال من تحبیر عبدالی که اشکال کردیم تحبیر قانونی پس بحث اول آیا تکیه که ما بین بحث قانونی و بحث لفظی بکنیم یا بحث لفظی با قانونی ندارن؟ چون اگر میخواد قانون بشه باید ابراد بشه میمیتونیم بگیم مثلا آیا تکلیف شامل قاربید میشوند؟ اما شکار شامل قاربید میشه. با تکلیف با کتاب ببینید بحث. بحث دوم در کلمات مرحوم استاد من فعلا به عنوان طرح مثلا نتیجهش اینجوری بعده بحث سوم چون که بحث من تمام بکنم فرمودیش که بحث سوم از خاطر راهش این نیست که ایشون از یک عبارت ساده که پایه مطلب مطلب رو مطرح بکنن راهش این است که از کلمات قدیم اهل سنت و اهل تسنن ها از اونجا مطلب رو مطرح بکنن چون مطلب مراد اونها چه بوده؟ این اینم بحث سر که راه طرح مسئله چیه؟ من فقط طرح میدم الله فعلا با ایشون مناقشه ندارم. من نکته رو این تضاد بین خطاب حقیقی و انشایی هم یک مطلب عجیبی یعنی یک وقفه خطاب انشاییه حقیدی و حقیقی ما نمی‌فهمم چه شکلی داره مثلا میگم خطاب شخصی خطاب نوعی بود معقوله مثلا بگم خطاب شخصی و خطاب قانونی بعضی از مشاورین تاریخم خطاب و خطاب قانونیه مثلا میگن این خطاب شخصی یا خطاب قانونی اینجوری انشایی و حقیقی که ایشون متقابل گرفتن این هم من خیلی نقطه ایش رو هز مکن از همین ها مهمترشون احتمال میدن بازم اوله مهمدالله شاید خلم مقرر درست نرفته ایشون دارن که تره نظام این طوری میکنن فنده یا یعنی بقی امیتون محلن نظام و الوجه و الاخیر و و نه ادبات الخطاب یعنی مثل عقیم و صلات وابه هر یه موضوع اصلا ورد شدن در لغت برای درات و بر کتاب حیبی هایی شد خیلی بعید میدونم بعد ایشون اختیار میکنم موضوع از ها یعنی وارد طلب اصلا در عرف الفاظ زر شده باشه برای اصطلاحات قانونی شده مگرم مرادشون از موضوع از ها نید مثلا قرف قانونی مثلا ولی مثل لبز آب بهش شده برای چیمان میکنیم یعنیم میگن تو قرآن مثلا برای دراتواز آب هر از در اول بحثش که گفتن موضوع آنها، آخرش هم اینطور گفتند فرنتیج نستدی مذاکر نمی‌کنم، من آن نداشتم، نمی‌دانم موضوع آنها، لذت دادن از کتاب انشایی دو نرخیه. مثلاً بیاید، من گیشام وارد عرض کنم، مثلا من گیشام آنها این عکس رو ببینیم، حالا این خطاب هایی رو که می‌بینیم عکس رو ببینیم، این کلام مجاز خب شده. خب که باید شده باشه برای کتاب انشایی. اگر من بیس نفر با مخاطر برار دادن به همه تحریر ایشان شتاب حقیقی باید این مجابه دیگه بگیم شیعه از من یا من سرن نمیشه در مرض من مشتریت شد یک مشتری ولی ازای ایشون هم بعدش بعد چند سر فرمودن مضافن اله همه لازم به کونه ها دیگه ادوات مستعمره هم فیل شتابه استعماده از وقتیه بعد از چند سطح خودشون و علیه فلا مناسون الالتزام به استعمال حاطر خطاب الانشایی بگه من قرص نفرند آیا شمع استاد که بسیار عجل بست از اینکه که فرد روی این استعمال روز و است؟ یه تعهد و وقتی با این احتمال هست چون هر استعمالی روشونی برز احتمال هست ولیکن مشکل کار دیگه ایشان اینه که آیا واقعا ملتزم میشن که وا در لغت عرقی برای خطاب انشایی برز شده واقعا این هست نهایتش استعمال در هر دو شده الان که من به شما عرض میکنم به این عکس نگاه بکنم که این خطاب حیدیگی که مراقب نیم که تمام احل آلم میکنم خایبی رو میگاه بکنم اصلا خدمات عکس رو یه رو گوش بکنید، ناراحت این مراد من خطاب، آیه مجازه عنایت می‌خواد. اصلاً آیا در لغت یا استعمال به تعبیر یا وضع آیا در اصطلاح قانونی وضع شده؟ من واقعاً نمی‌فهمم، من ان شاءالله خدا نکند بخوام اعتراضی به استاد بشه من همین صفرم ایشون که يوم تاریخ نزار رو زحد بردارن. که آیا ادوات ها اونی که استر... اینا ایخ بحث کردن اینکه آیا خطابات شفاهی خطاب کرده به خصوص موجودین این خیلی وضعه خیلی وضعه از این که ایشان تعبیری که به کار بردن بحث وضع به کار بردن دوبار که این هم خیلی تحجیب آور. بعد هم برای مسئله دو تا تمرزه کردن ناسه کنجون یکی زواهر کتاب حجت باشه یکی ای اینکه تمسک به عموم بکنه این هم برای ما سعه جوابره چون تمسک به عموم همو جزء زواهرش چیز دیگه نیست فقط یکی زواهر کتاب خدا این تمسک به عموم شهن میشون زواهر کتاب رو قبول نکردن اما مساله تمسک به اموم را قبول کردن که این سمره بالغ میشه این هم برای ما جای سوال داره که این دو تا با هم دیگه چه فرقی دارن و چه نکته ای که یکی قبول ببره اون یکی‌ش قبول نه نقطه چشمی که در مسئله هست اصولا ببینید ما در مسائلی که بر به امور حقیقی مثل بدن انسان میتونیم ما ابتدااً یک بحثی راجع به بدن بکنیم و کوصت بدن و بعد بحث بکنیم که مثلا مبار مسخ خب بدن انسان مشخص سیستم. مثلا بحث بکنیم که آیا در ت مبار ممسعرض می کنند. در بحث ما در اعاده صحت فقط کسی که مریض شد برش گردونی یا در تب اوضافی برای اعاده سهت هفض و سه هم تبه که ما اصطلاح اینوز امور بیداشیم خب میگیم تر تر سنره که آی این بحث بیرد در این که ممکنه این قابل تصور است اما در امور اعتباری در علوم اعتباری تفکیه که ما بین سنره و تحریر محل نزا رو و درک کن. یعنی ایشان اگر میخوان تهریم هالی نزدیک بکنند، اول باید با رو پیدا بکنند. چون من از قبل این مباحث در در بسیار اصولی از تفسیر جنگ فرد نشکرید. مثلاً فرضی اصلهاي 70 و 80 که فوقاً ورزوهون کرده، یه دست واقعه فهم این آیه حامل حال ما میشه لاتون سقو بعثه الکافر مثلاً. با زنها یکی کافرن ازدواج نکنی، نگه نده رو این آیه شامل حال ما میشه؟ شاید بعضی شما تنین در این لاتشو موسیقی به اصلا کوافر زمان وقت فیغمبر بوده مثلا زمان فیغمبر زن کافرین میشه دیگه شامل ما نیست ببینید این بحث آمد تو فیغ مطرح شد وقت تو اصول چه کار کردن؟ این بحث جدا کردن، افراد کردن گفتن آیا عموماسی کتاب شامل ما میشه پس در حقیقت خطابات شفاهی اول یک نیاز فقهی برو از اون نیاز فقهی در مسئله اصولی در آوردن روش کنی کنم خب اینجا این سوال خواهی نفایی میاد که شما اول سمره رو بگیریم. اگر سمره بحث در عمومه ما باید تحریر محل نزار رو و همون تغییر عمومی شوارد بشیم یعنی در این خب بقدر این روش شناسه بحثه در اینجور مسائل در حقیقت سمره در اوله مثل اولش اول رسولی که تحریر محل نظار تبقه اون سمره است یعنی بحث علمیش این طور اختزام میکنه ما باید گفت اون سمره سمره چرا محرش شده تو در چرا محرش شده این هم نقطه ششم، نقطه هفتم که سریعا اعرض می‌کنم. من چراون اعرض کردم که ادهی از مباحث و اصول که الان در... در شاید اصول ما هم نواجده در اصول قدیم بوده این ادهی از مباحث شاخصه های مذهبه مثل حجیق قیاس سنیا مختلف یادن خب همه سنیا بودن شیعه قاید نبوده اون ظاهری ز... ها مثل ابن حزم قائل نیستن یه در از مباحث شاخصه های مذهب نیستن مثل ولاد سیقه وجود. ممکنه پنج تا فقیه هنفی گفته دلارد می کنه شیش تا فقیه هنفی گفته نمی کنه شیش تا اصولی چیه گفته دلارد می کنه پنج تا فقیه شاخصه مذهب نیست مواحظ ظهورا قالبا شاخصه مذهب نیست در بعضی از مسائل مروم نامینی یک التفاقی پیدا کردن که شاید این مسائل به اصطلاقیشون تعریب نکردن شاخصه مذهب باشه مثل بحث حقیقت شرعی مرمونای این بحث مثلا کسان بحث هیلوشتری در شیعه معنا نداره چرا؟ چون سنی آروازشون از پیغمبره حالا توی لبد وضوع آمده آیا وضوع معنای شخصن یا وضوع مختلف شدی این ممکنی بحث اونو مختلف داشته اما در دنیا شیعه ما از احلیه دیارسوی شد از اما مساله وضوع وضوع دیگه یعنی اگر فرشنا این رو خوب بحث بکنی بحث اصالتات هیئت شرعیه خودت بحث ولی بحث ظهوریه اگر خودت بحث کنی گوش مذهب میره چون ما از اهل بحث میگیم زبان اهل بحث سوالی که من میخوام اینجا مطرح کنم که این بزرگان معاصر ما کمتر اناراست آیا این بحث ممکنه نیست از شاختاه مذهب باشه یعنی ما دیگه نیاز بیم این بحث نداشته باشه چرا به خاطر اینکه اصولاً ما می‌گیم اهل بیت خطابات قران به تمسک، اما خود اون حدیث هست که قلت قول هارون و تعالی رسول تشکو بهسان کاوت. یعنی اهل بیت ندیدن مفسر کردنش، آلام صو زمان رسول الله بده. بگین ما هم این بحث در اصول مطرح شده باشه، وقتی به روایات اهل بیت برمی‌گردیم، اهل بیت با آیات شتا بر... به خطابات قرآنی تمسک می‌کنن به زمان خودشون. این معنیش اینه که خطابات شفاهی قرآن شامل قاربین و معلومین هم میشه این راوی برس رو نایدم آقا مختلف کرده بسن این هم فکر بکنیم مسئله هشتون در اینجا که بر استاده اینی که پرموزن این مسئله محسنی اصداره این که این خطابات از طرف خدا بردسان و سلط یا نظرات از علاقه برد اینه من نفهم بزن مراجعشون یعنی مسئله ایشون احتمال در قبرنما نشستم خدا فرمود یا ای الذين امنوا هیچ نشی نداشتم فقط به زبانشون خون جاری شده اما اگر در خانه بودن خداوند فرمود یا ای الذين امنوا اقیموا اینجا دیگه از هم نظام معنا نداره پیغمبر اون رو بخونه من هر مشی تقبر نکردم که شرط خودم بینمر باشه یا پیغمبر واسطه باشه مشافه مرهم بشه ظاهریش که الان شده اما لو نظرت علاقه قلبه قلبه یعنی شخص رسول لسان یعنی برای مرده لسان ظاهریه اینه که پیغمبر میشه، تن خدا داره که به زبان پیغمبرشه، به قلب اینا بر نیست. زبان در مقابل قلب میونه. من میگم مثلا چه نزایی در علوم قرآن هست، چون من نشون چین که نزایی میشه که پیغمبر دستور حکم بلندی داشته باشه. دقیق سر میکنه، پیغمبر فقط اون رو بررسن. ظاهریه به واسه این همه خوب، ظاهری بافنت نیست. این مطلبی هست ایشون مبنای نزاع قرار داده. نه معناش قابل تصوره، هنوز تصور نکردی خب خواهی نخواهی بنای بر اون هم مشکلی دیگه داره بر قلب پیغمبر نازو شده که پیغمبر مردم دو بر قلب شده که بر قلب پیغمبر نازو شده که لفت نه بوده محتوی قرآن بوده خب بگه خفاف توشونیست نمازیشون بگه یه بحثی هست که اینها لفت رو پیغمبر برمده محفوم و محتوی مثلا اما پیغمبر که مقام این مقام بیاض این بلیزا این انشا ابراز این نه اینکی. یعنی این لغت و مال پیغمبره معنا در قلب بوده اصلا خداونده متعان آیات قرآن رو با این الفاظ نردست داده محتوى رو فرستاده داده الفاظ کار رسول الله دقیقه میفرده آها حالا این بحث دیگه این بحث هست اما اگر این معنا باشه این لازمه چی کسی خطاب نبوده در قلب پیغمبر بوده که ازگانی هشتاشتاز دید این قلب پیغمبر این که سبب فجیل دو همان این فجیل دو این که خود پیغمبر کنم ده اون نظام اینه اون یک نظام هست که اصلا خود الفاظ و باران موجوده نیست، خود مقایی و باران موجوده این بحث قبلی که نه حالا شد دیگه که توچی اموتی در قلب در پیدا. تا یا فیغمبر محصه سوچی داشته رفتی می گفتن می گفتی یا نه این یه بحث دیگه رفتی دی به این بحثی بحث که مرمون من نفهمیدم که مثلا یه قولی باشه که آیا نظر از علا لسان و رسولا خطابنده لعنمه یعنی این رحمی چیزه فیغمبر فقط می خوندن نظر بلند بود یا نه نظر علاقه علا قلبه تمام آیا نظر از علا قلبان می کردن که نزای بشون ک مشافهش باشه مردم باشه آیا تو قرآن فهم میکنم بعضیش مشافهش پیغمبر عقل مصطلح رو رو گشنم بعضی مخاطبش مصر... رایان مؤمنون عقل تو توبوه الله بعضیش مخاطبش پیغمبر و رضا آیا که این طوره که در این چیشون فهمدنی یوب نابر این مقدمه اصلا من نفهمیدم ایشون نظرم بارکشون به چیه تو این نظام <تصفح> أسأل الله على محمد